بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله برد العالمین و الله علی زیدنا رسول الله و آله طیبین و طاهرین المعصومین و لعفت دائمت و علا اللهم افترنا و رحمتی و رحمتی و رحمتی شد که در بحث غیبت مطالبی رو مطرح بکنیم آخرش این شد که برای این که شدیم خاصنا چند راه مختلف وارد بشی به این دراش همین شد که سرده جامل احادیث روایات رو بکنیم اون روایاتی رو که اساسا در جنبه های فقهیش محل کلام میشه اونا رو اینجا روش تاکید بکنیم و الان در بحث دیروز متعرض ریشه های روایت شدیم رو که در کتب اهل سنت وجود داره این که بنا اینه که برگردیم به اون که در روایات ماست من سابقا چند بار توضیح دادم چراختی این که چه روایاتی رو مثلا فرضون به احادیث شیعه یا وصایت چه روایاتی جز روایات شیعه است چه روایاتی جز روایات شیعه نیست این خودش یک ای مشکل داره مثلا همین وسائل از کتاب یا از کتاب شیخ صدوق یا از عمالی شیخ مفید رو باید درنکنه که مال صوم است اگه ایشون لذا لذا این که اصلا معیار چیه؟ ما الان ده ها صدها روایت داریم در کتب اهل سنت، حتی زیدیه از اهل بیت. اینا رو نایووردن چون در کتب خود اهل مون. ما یک اشاره اجمالی دیوز عرض کردم دیگه چون نمیخوام فعلا وارد بحث بشم. ما می توانیم بین این دو تا قائل بشیم. احادیث اهل بیت میراث شیعه امامیه، میراث ما. امام. الان اون که در جامعه احادیث آمده اصلا جامعه احادیثی چیه اسم کتابه اما اینطور نیست ابدیش های ما اما احادیث ما نیستن اصلا کلن از طرق ما نیامده اما حالا در کتابهایی که علمای ما نوشن این یک راهیه که ما کتابهایی رو که علمای ما نوشن اون که توش آمده اینا رو بررسی بکنیم. حالا ولو اصلش از احرسون نفرسته در اون بررسی بگیم که اینه اصلش رو در احل و یا روایاتی که مربوط به احل دیتی و فعلا در مسادر زیدیه حتی این وقتی از فرم یعنی اخیران مندر 25 سال 30 ساله خوارج هم مثلا ابازیه که در اومان هستن کتاب هاشون داریم چاک میکنن. تو کتب ابازیه هم روایات اهل دیت امیر هست. امیر المؤمنین هست. یعنی اگه بنابرای جمع بکنیم حتی اون چیزی در کتب عبازی هم وارد شده چون برسه به زیدی و اسمایلی و دیگران. هم حالا برای اینکه بحث منسجم بشه من از همون چون دیروز که من داشت در جا خوندیم از باب 119 این کتاب جلد بیست جامال احادی ایشون از آیه مبارکه یک آیه اوبرده ولا یکتر بعض کم بعضا مرغوم شیخ چند تا آیه آورده برای ما به این شد که اول کلا رو واسه بخونیم اونایی که بعد در خواهد آمد روش تاکید بیشتر بکنیم و الان وضعیت روشن بکنیم بعد هم یک دوره سریع کلاسی کلمات شیخ رو در نکاسه بعد تقریبا مثلا ان شاء چون مرحوم شیخ چند تا آیه دیگر هم در بابه غیبت آورده بعضی از کسانی که بعد شیخ امام در سفرم ایرانی استاد مناقشه کردند که اون آیات وقتی چندان به باب قیبت نذاره لذا در این کتاب فقط یک آیه آمده درسته این آیه که صریحه در قیبته یک یختب بعضو کم بعضا این که صریحه در قیبته هیچ جه بحث نداره و را چه این آیه مبارکه من انشاءالله فعلا در خلال بحث که بحث خواهد آمد شاید یک مقدار بحث های استنتاج احکام از خود این آیه این آره من اشاره بکنم مثلا از لایحه برزه بعض کن بعضا میشه احکامی رو در وود یا مثلا چیز یعنی که کرده شیخ خوب یا نهی که برزه شیخم آمدن متعرض بشدن مثلا بگیم از خود این آیه در میال احض و بر غیبت حرام از کل مرحومه شیخ غیبت رو به این عنوان ذکر کردن که روز محرمات و قاعده بودشتن نوع رابعشون ان نوع الرابع يحرم الاكتساب به عمل و محرم و في نفسه غير از این جهت که بگیم کل محرمه لایجوز اخذ کنیم شرح دادیم توضیحات مفصلی که کل نجسن لایجوز او کل حرامن لایجوز او اخذ اجرت مقابلت او غلام اینا رو توضیحاتش بدرس غیر از این عنوان آم، مثلا ممکن است کسی بگه دقیقاً از همین خود آیمره که حکم اخذ اجرت در میاد و لا یختب بعض کن بعضا حالا <متحد> من اینو ارز که این فکر بکنیم این در میاد تقریب اصولی تقریب قانونی داره که از لا یختب بعض کن بعضا در بیاد مسئله به اصطلاح اخذ اجرت و حرمت اخذ اجرت در حال حدیث اولی رو که نرام کردن حدیثی طولانی چند صفحه است در کتاب فقیه به نام مناه نبی نه نبی انکزات سندش رو شیخ صدوق در آخر مشیخ اوبرده مکامه که من مناه الندی اون سند ضعیفه از کردین این حدیث طولانی و قطعا به نظر ما جعلی نه که احتمال هست لیکن جعل در شکلشه یعنی در حیعتشه مفرداتش هست به هر حال اون چی که در اینجا هست و نه انل غیبه و استماع الیها. بحث قیبت که خب آیات مبارک هست احتیاج نداره که آدم سرد حدیث بررسی بکنه اما الاسطماع علیه ها این به سنت ثابته اینشالله از که کرد خود مرحومشه در بحث فقر بحثی دارند که کمان این که یهرم الاختیاب یهرم الاسطماع یعنی هم قیبت کردن افراد که این ظاهر آیاتی حرامه و همین که ما گوش بدیم به قیبت اون هم حرام این خودش بابی داره روایتی داره و حکم فقی داره که اینشان رو بعد عرض میکنیم حالکه این حدیث شدن ضعیف، اما اصل حکم ثابته اینشان رو بعدم خواهدام و نه انه غیبه و قال من اختاب امران مسلمان بطل سوموهو و نقذ وضوعو یا نقذ وضوع او. این ما ریشاشو خوندیم بطل سوموهو بلکه صلاح هم داشت وضوع و صلاح داشت صوم so من بخاطر اینکه در اون دوات بود که یکل لحمه فی میسر گفت بعضی از بیزغ گوش گوشتون گوش از داخل شما ببینید که خون و با قطع نظر از این مطلب چون ما در احکامش بگیم این رو خواهیم گفت بطل صوم و صلات و, و, و یک نکته من عرض می‌کنم ممکن است ممکن است کسی این سه حکم رو از خود لایختر در بیاره تا یک بار بعضی الان توضیح اصولی شعر نمی کنم توضیح فاریه شعر نمی کنم فکر بکنید ممکن است در توضیح کنم طب اثر ترازو چی نه نه نه علی دیگه بسد وجود باشه چون همش این جوین نه نه می در نمی درم در روایات ما فقط کذ داریم اما تو روایات دیگه هم داریم روایات بسیر فکر کن الکذ و الغیبه و حتیوا هم الان تو ذهن من نیست الان ما این که بحث همو گفتیم بحث کردیم الان تو ذهن من نیست که اشیای قائل داشت از سنیا قائل داریم ابن حزم قائل که غیبت مبتل صومه قائل از سنیا داریم اینطور نیست که الان قائل نشده بله روزیش وارد قضا بکنم یه باطله اگر غیبت کرد باطل بود قضا اینه داره ابن حزم داره بناسانش از بعضی هم ناقص چون خیلی بعده احزانش تو بیست بیست تا ششم اما الان فتوا که مسلم بینه که ناقض نیست وقت کش بگیره این که مسلم میدونن اما در قدمای ای اصحاب کسی باشه الان تو هم حاضر نیست حضور ذهن این بحث یه بحث فقهی سوم و وضو و صلات بحث فقهی باکن فتوا بر این نیست نه در سوم نه در وضو نه در صلات وجای عمر قیام تفوه و نصیحه راه این مطلب که تجسسم به اصطلاح یکیش تجسمش به همون لحظه اقیه میتن بود که در آیه مبارک است یکیش هم اینه که از در کذرم هست یعنی که ما آفات لسانی اصولا که از آثارش این رائهه بقیه بوی بدی از انسان خارج میشه با این صحبتی که میکنن اینجا البته تفوه و منفیه فیه اندهانش رائه حتی انتن منجیفه این مال تجسّم روز قیامته اما تو روایات اهل سنت دارن ما هم داریم بلکه ما مستقلاً از امه نداریم حالا یکی یکی آره توضیح می‌دید که در خود همین دنیا هم همینطور بود میگه پیش رسول الله بوی خیلی بدی آمد از طرف اون عده کرد این بوی اوناست بلکه این نشان روز قیامت تجسّم روز قیامت بله فإن مات قبل أن يتوم مات مستعلاً لما الله اما این خطا برش نیست که اگر توبه نکرد از گناحت مستحل له الله یعنی اشاره به کفر باشه این بریليه ما یکی ای دو تا عمل داریم که با اینکه جزء اعمال فریه هستن گفته شده ترک اونها کفر آور مطلق مطلح نداریم که اتیان هر عمل حرامی کفر بیاره مثلا ترک صلات گفته شده ترک هر گفته شده به خاطر منکر پر و تن الله قديم و علام نمیخوام وارد این بحث بشم بحثی خودشه اما در مثل قیبت ما نداریم این روایت قابل اعتماد نمیبینم در کتاب تنبیه الخواطر قال نبی لا تهاسدوا ولا تباغضوا ولا اختباز بکنو این بیشتر جنبه همون حرمتش است و در مصادر ما نیست در نهج الهدى سنت درکره در تنبیه الخواطر بعض قال سلیمه بن جابر این هم در ما نیست جز صحابه ایست که در مسادر اهل سنت هم این حدیثش هم به اینه ذکر کرده. البته اهل سنت بیناشتن صحیحش جابره مثل اینه یعنی خود اهل سنت مثل اصطور غابه دو جاورده هم جابر یکه صحیحه جابر من راجب به کیفیت کتاب های صحابه و اینه های صحبت های سامران ها ارز جاش اینجا نیست این شاء الله این روایت رو در ذیل سلیم بن جابر در کتاب اصول غابه ذکر میکنه به این از تو رسول علم از همین متن قصے تراسل الله صلی الله علیه و آله خیر را که نشون می‌ده از همون کتاب گرفتم میگن فعل لاغبه به فلا لا تحقرن من معروفه شیئا کار خوب ولو کمش هم باشه تأخیر نکن ارزش داره اینجا داره ولو ان تصب به لکه به نظر هم تو کتاب استلغابه من درکه من داره اون به نظر هم بهتر روشه. عربیش حربیتر روشه ولو انتصب به من درده فی انا المستسقی یکی که, که آبست و خاص از همون سخلی که داری توی اون زرف و آب بریزی تصب به من که فی انا المستسقی و انترقه اخا که به بشن حسن تصبیدان که کتاب استلغابه همینطوره به بشن حسن دقیقا مفد همین اگر زا احتمال لازم کتاب ک و اضاعت بره فلا تقطابه بود. اینجا اینجوره در اون تقطاب فلا تقطابنه به تشدید آمنه این هم فقط حالا حاله فقط یا تذکر این هم هست اصولا یه است که بعدها در نوشتن سنن رسول الله یه مقدار زیادش نافع بود اینه که دقت بکنیم بعد از سال ششم که ساله و شد و بنا شد که متارکه که انگه شدید رسول و مشرکیم این فرصتی در سال هفتم ایجاد کرد که به اصطلاح تاریخی میشن آمون رفوت گروه گروه از اشائر آمدن و اعلام اسلام کردند یا آمدن و مسلمان نشدن و برها. چون دیگه مسلمان نشدن مثل اون جعفی ها دیگر هست این اینها که می آمدن یا یک نوشتاری از پیغنبر می برسن تیگه هاشون که یمن این ها بودن این نوشتا ها بعد جمع شد یکی از مصادر اصلی تدوین سوره رسول الله شد. خیلی دقت رو کنه خیلی این ها عنوان پیدا کردن من هم گفتاری بود مثلا که میگه آقا چون این روایت هم داره اونجا زی داره روایت من با پدرم مدینه که اسلام بیاریم احتمالاً همون سفره این سوره نجابه میگه آمد ما خدمت رسول الله بعد اون اولین شدین هم جزوگاهه علاوه حال اینها فی ما بعد یکی از این مصادر شد این خیلی مهمه یعنی اینا رو کم نگیرید اون چه که در این سال هفتم هفته هجرن. یعنی یکی از مقدار زیادی از احکام مخصوصا احکام مالی که من در بخش مالی نظام اسلامی اونجا از کردم مقدار زیادیش همینجا پیام برحکم برن کردم این سال هفتم. اصولا این که که وقتی هم همین هایم برسا از کردم عمر نبدالعزیز فرستاد به مدینه که سنن پیغمبر جمع بشه همین بود یه مقدار مایه اولیه اینا بود و این خیلی خوبه یعنی ما میتونید در این جهر کارهای خیلی خوب بکنیم که حتی اهل سنت هم به دیده احترام به این کارها نگاه میکنن ریشه های تدوین اولیه سنن به چه نحوی بود یه مقدار شمال همین ها بود به اضاعتبر فلا تختابن نهو که ریبت و انجار نهو حدیث شماره چهار بصرودی فیلو بلا اینو از پیغمبره علیمیاس طبعا این فقط اصل حرمته که اصل حرمت پیش ما واضحه من یکی که ارزش دلالی احادیثم هم ارج می کنم ولا تظلن ارزا که پچشم ولا تخدن تخ خاک این البته یک جهات مصلحت دنیویشم ذکر کرده که اگر تو برادر به ریبت کردی اون با تو بد میشه بعد تو پشیمان میشه چه این کارو کردی این یکی از آثار سوئی اخروی بعد در دنیا چون من توضیح از دادم در روایات گاهی آثار دنیوی ذکر میشه گاهی آثار برزخی گاهی آثار اخروی اون حدیث شما یک آثار اخروی این آثار دنیویه که اگر انسان غیبت کرد پشیمانی داره پس یکیش حرمت غیبت یکیش هم بعضی از آثار دنیاویش مش درستی هستند ان قص رادی فی لب اللباب اعلی علی انه قال اوصى رسول الله نزع بجنی فاطمه پس کلام از ارسال چند حدیث داریم ما یکی از این دوستان ما دوستانم آیین معاصر وصای رسول لزوجل بود اینا رو جمع کرده کار خوبی این وصایای امیر و وصایای پیغمبر و امیرالمؤمنین بحث سنی مختلف و در روایات مختلفه و حجمش هم مختلفه مثلا بعضی یک صفحه بعضی سه چهار صفحه است نسخه چهارشنبه یا جعریه بعضی‌هاش که کمتر میشه بر اساسه سندی کرد لکن خیلی‌هاش هم سند ندارن تو اهل ذوق العقول تو حسابات دیگه آمده، من می‌خوام وارد بحثش بشم این یه مجموعه اسم مجموعه جنگل هست به نام از قلم ما معاصر اینا رو جمع کرده چاپ کرده وسایر رسول ذوق و طول. اینا همه با عنوان یا علیه چون جهه که من تو ذهنم سند نقی الان تو ذهنم نیست داشته باشم خب در اینجای ایشون نرم میکنه الا ان قال غیبه و غیبت و نمیمه فان الغیبته تطر السائم این حرمت غیبت تفسیر و سائم توش داره و نمیمه توج و عذاب القبر ببینید عذاب القبر اون اثر برزخیه البته در روایات معروفی که اهل سنت دراف خود غیبه ان توج و عذاب اینجا در نمیمه زده اما که خوندی دیو سوره ماصدر اهل سنت اما رفتن مثله این سابق قبل و ع مهم چیزی. یکی به خاطر ریبت کم با خاطر لا یحتر زنل گ و مقطوب حل محجبوب انل جنه این هم آثار بخویشه. یعنی اون حقیقت بهش رو درد نمی کنه این شماره پنج اصلا هم به حال صندلیعلانش هم مشکل داره و مطلبش بعد نیست، تحفیر رسانه میشه، قائل داری دو وجه اساسی میشه. اش هرگز که یکی به لحاظ سوم میشه، لعف خود زنی و تو بعثه فکریش می عرض میشه این بعثه سمتاره نشین از این کشور. یکی هم ممکن است این از لاچک ها در بیاریم، از لاچک ها بعضو خب بعضاً در بیاریم که هم از دیم میشه. در کتاب فقور زا قال و قال العالم علي و سو این فقط حرمته, است حرمته حدیث شماره 7 حدیثی که سندش الان خوبه در کتب دیگه هم اومده و رزا آمده. چند نسخه صحیح رزاه آمده خلاصش اینه من الناس البته این از ابی عبدالله در کافی نقل کرده سندش معتبره اما تو صاحب رضاییه یا تو اون اخبار حضرت ازان کردن رسول الله من آملن ناس فلم هم و حدث هم فلم یک یک, یک رب هم و وعد هم فلم یخلف هم. کان من هر اومد غیبت تو مطلبش مسلمه و بیان حرمت است که مؤمنه حالا این مؤمن کسی که مؤمنه که اون جایز نیست این دقیقا موضوع شیه بعد ارجیم کنیم مثلا آیا موضوعش اینه که ظلم نکنه دروغ نگه خلف نکنه حالا اگه شیه این کارا رو میکنه مثلا خود استاد که الله قاعد خلف ورد حرامی یه بحث امسال و نرسیم تو مقاسب اضافه کردن حرف خیر و خلف و فهمونه که از عدلی در نمیده که حرف خلف شیخ علی که از طلاب گفت تو در سنت دریشان اوازیشم که خود و قلاما خود فرند می‌خفتن یعنی فلان ساعت می‌می‌میا. به عده فلان یخلفو. کان من حرمت غیبت و ان و الله این بحث را همین گفت که اصولا موضوع حرمت غیبت در چه موردیه؟ مخصوصا حساب که مهم میشه اینکه آیه غیبت اهل سنت یعز یا نه چون اصلا مرغوای ایروانا تمایل دارن که جایز نیست مرغوه مقدس هر دیدی تمنای خویی در اینجا خیلی تون صحبت کردن متعارف ایشون نبود خوب بحث شناخت نفرن کتابای کیشی که نوشته در مسواح الفقه ای اینجا خیلی اصن گفت اینا کافرن اصلا بعضی از آثار زوخ دایره اقدام نوشتند این دلیل سوشیست شد چالش کردن الان در این بحث غیبت خیلی تون شدن برای مصادیق نظر ما اون تندیه کمی خاله از نیست. و به مقدس و عدویدی هم اشعال کردن که ایشون قبول کرده که قیبت احرسانت جایزی. الان جایز نیست منظرم. اصلا که بیدن اینشالا بعد متعرض میشیم تو بحث فقیهیمون که این معلوم نیست که موضوع دقیقا این باشه. این درجه عالی موضوع. حدیث شماره هشت سردش معتبر از کافی هست از کتاب زهد حسین سعید هست یعنی کتاب زهد منصور بیشانه جمعاونی شده فیلی وچه این نداره و در کتاب محاسن بردی هم هست فقی هم داره ثواب الاعمال هم داره و بهار هم از کتاب قضاال حقوق سوری نحرم کرده حدیثی بسیار محرم این اسانی دید که اینجا گفته شده من فقط نقطه پندی را ارزی بکنم کتاب کافی سندش حسین سید برمیگرده کتاب زهر کمال خوده حسین سعیده این همون کتاب کافیه کتاب محاسن البرگی اند حسین سعید محاسن برگی پسر از حسین سید ارز کردم شواهد ما نشون نمیده که برگی به احواز رفته این شواهد ما اینطوره لیکن حسین سید اواخر اون خوب آمده احتمال داره برقی در خون بیشان ملاقاتی داشته در کتاب فقیق گفته فقال رسول الله این توضیح شما نهارد کردن گاهی اوقات که صدوق یک مطلب رو خیلی واضح نره میکنه این از یک نسخه خیلی مشهوری بوده این نسخه مشهور در قام کتاب رسیم سریده اون نسخه خیلی مشهور این و باز در کتاب سواب الاعمال صدوق حدثنی محمدالون حسن اینه ابن الولی حدثنی حسین ابن حسن ابن عبان این حسین ابن حسن ابن نعوان یکی از راویان معروف کتب حسین سعیده چرا؟ چون معروف حسین سعید که قوم وارد میشن خونه این شخص پدر این شخص حسن ابن عبان. این پسر ایشان حسین کتب حسین رو به حسین سعید برای قومی ها کرده خوب قدم په یه جایی هم داریم که قومی ها از همین طریق کتب حسین سعید نقل کرده؟ پس این کتاب به اسامید متعبی بعداً دیدی او تصدی ریاست وقت اهل کوفه بوده بعد آمده ساکن احواظ شده مقداری از میراسای کوفه رو به اهواز آورده دو نفر احواظی بزرگوار ما ازشون نه که یکی حسین سیدی که علی میبندیار و کاملا فزالان ثقه و قلل به این تاریخ حدیثم واضحه من عبدالله ابن بکر از کتاب عبدالله ابن بکر خیلی روشنه حدیث خیلی تاریفه تاریخی روشنه قال قال رسول الله سباب المؤمن سباب کس بس بسین یعنی فخاشی کردن که به معنای با مفاعله خسوق اطالهو کفرون و اصل و لحمهی یا معصیت الله یا معصیت الله که همون قیبت باشه و حرمت و مالهی که حرمت دمه کلمه دمه در این کتاب دهار آمده که حرمت الله به جای دمه الله آمده از را این شراب حدیث این خب معلوم شد که مسئله اکل و لحمهی که معصیت الله اصل حرمت قیبر درست سندشان معتبره مطلبشان درست حدیث شماره 9 در کتاب تبول اعمه آمده من یه توضیحاتی راجب این کتاب و اون دو برادری که این کتاب است. فرزندان بستام ابن بستام یه توضیحاتی سابقا نرخیم دیر تکرار نمی کنم قالبا مشایخ این دو بزرگوار مجهوله خود مجاشی کتاب رو اجمالا تعیید میکنه نسخه رو لیکن خیلی ابهام داره خود من احتمال دادم که اینها مثلا اسماعیلی بودن یا زیدی بودن این دو نفر وضع روشن روشنی پیچه ما ندارن خیلی اطلاعات ما از این دو برادر خیلی ضعیفه ان محمد ابن منظر که نمیشنستی اقال حدیثان ها الان یه گول اسماعیل ابن مسلم سکونی این به در تکاب سکونی بوده لکن نسخه ای که الان در اختیار ما نیست و اصولاً نسخهش خالی از ابهام نیست بله این راجبی اینه که این مطلب رو در کتاب جلال سیوتی هم در دول منصور داره در اهل سنت هم دارن خواست به ما نداره داره که پیغمبر فرمود که بله پیغمبر فرمود این الله یه کسانی که گوش زیاد میخورن چون خود پیغمبرم گوش میخورن گفتن نه امراض از لحامی کسانی که بیبت میکنن گوش مورد برستن گوشت برادر معامل یه طولانی حدیث مراجعه کنن و مراد از لحامین گوشتیست چون گوشت بوده به خود مفیده اما مراد از لحامین اونه امام جواب میزن اینه این دولت از فکرونی رسیده الان به ما که از احسانه تو مسادر عامم هست ولی مشهور نیست میزن به یکی از صاحب تابعین است و شده یا تابعین که همین توکی شده که لحام یعنی قیبن حدیث شماره ده همین مضمونه از کتاب دعائم دائم الاسلام از ابو جعفر محمد کرده لیکن عبارت عبارت دائم جمع جور تره عبارتش یا خود دعایم تصرف کرده جمع جورش کرده یا احتمال میدیم نسخه سکونی که در اختیار دائم بوده مرقبتر بوده تا اون نسخه که در اختیار کتاب بستام ابن بستام بوده شی چی عبدالعون بستام چی اسم خوبی داره برا؟ نه نه این بستان یه ای چیز داره یه لغبی داره داره ابن بستان بستان, بستان. یا بستان تلفز می سهیش به کسی به بایه ما ها این هم نشون میده حرمت می تره. چیز خاصی نداره حدیث شماره 11 جامعال اخبار داره که حدیثش محسل الان میکنه قبول کنی کرده به من رحم و ولد من حلال و های اکل لغوم تو مسادر آمه هم آمده این اشاره به یک نکته دیگه, دیگه اینکه تصوور حرام میشه در این کذ کذ به من زعن انه هو ذبن حلال و هو یاكل لهما الناس غیبه این اشاره و همون آیه مبارکه است میگن شواهد کتاب و اشاره و آیه و شارح هم فله انوال ولی چی آیه, آیه دیگه الا اولاد اولاد در انوال میگن که مثلا اگر گناهی انسان انجام بده این در نطفه موثر میشه این اینو بگوییم حلال یعنی در شرک شیطان نیست درش رگی از شیطان وجود نداره مراد این هستن که بعد به میشه انسان واقعا و هویاکن لهم الناس به یعنی اشاره به اینه این اشاره به مبدا گناه در انسانه که ممکنه مثلا اینکه از مبادی گناه مثلا صورت داریم که مثلا فلان کار در ذریه الكسب الحرام یدین و پسزرگیه حالا ممکنی آقا در سند جیده سالی کسبه حرام بشه اصلا بچه که بیر شماده بسید تا بزرشی آقا همونه سال شده این اثر این کسبه حرام در چل سالی در بچه ایز میشه این هست در رواد هست این اصل مطلب سابقه اشتن بلغیبه به اناها ادام و کلاب نار اگر این باشه ادام و کلاب نار باشه این اثر روز قیامتشه با یک اثر وزینامت بعد انشاءالله عرض می‌کرد که همین روایت عامل به انحاء ادامه و کلاب ناس نارش ناس آمده اگر اون باشه مال دنیاست تجسم عمل به لحاظ دنیاست اگر نار باشه تجسم عمل به لحاظ آخرت حدیث این البته این حدیث تأکید بر حرمت و تجسمش و اجمالاً هم درسته یعنی این که ادامه کلاب ناره توی آت احل سنت هم آمده نه حسود اونان نرده حدیث شماره دوازده رو که خوندیم راجبه بسته امر و کاری که با سلمان کردن محلی که دریجه نموزه از مجموعه بیانه این محل با اون چی در کتب آماز فرق میکنه حدیث شماره یه. بله البته داره که پیغمبر همون که هنوز سرزی گوشت زبان شما می بینند این مال اثر اثر کی حدیث شماره 13 باز بر هم قص در لب لباب علی رسول الله من رسول الله به ناس من اصحابی که بعد گفت تخلل یعنی خلال بکنن چون اون گوش لای دندانشون بود این روایت هم در کتب اهل سنت هست طبعا الان پیش شما سرده روشن داره حدیث شماره 14 مرحوم شیخ توسی از این اسانید زیاد داره یکی نیستی که دوست حدیثی است که از عبد عبدالسلا... عبدال... سلامه بن صالح حروی الهراتودی معروف از دربوسل یکی مصدر اشاینه نداره مرحوم شیخ طوسی عامی آن احساس آم کردن که, به غلام حضر بود. که این که معروف از بقول امام علی رضا و خیرش نکردیشون آمی است البته وقتی که این هم با حضرت رضا بوده در روایات ما خیلی نقش نداره ابو سعد نقش زیاد نیست توی روایاته عامه خیلی نقش بیچاره این خرج و مشکوک تعریفش کردن بعضیام توصیف حالا این روایت باغت نظر از ابو سعد حرانی مشکل داره یه مقدارش مربوط به تجسم غیبت که پیغمبر اون طوری چیزی این کار بکن اون کار بکن تا غیبت غیبت هم مثلا دیده بله این بله اون غیبت مثلا به صورت یه میته مثلا بدبوی بوی ای و اما من المل منتن فهل غيبه فهرب منه حالا من اخی یه صفات ان یکیه یه چیزی خود نکنه قال مراقب اصل حرمت و به اصطلاح مسئله تجسم در دنیا البته روایت واجی به انبیا سابقینه که یکی از انبیا سابقین و که من توزیح اندی که دو هزار بیشتر اثر کرده باشن نیدیم که آن بحثن که استثاب شرایع صابقه میچکست این بحث به نظر ما خیلی روشن نیست ظاهرش اینه که اصولا شرایع صابقه یعنی شرایع الهی اصولا یکی هر. یه موارد یا حالا یا تحریف پیش آمده یا شرایط زمانی عوض شده یه مواردی عوض شده اینطور نبوده که هر شریعتی که میاد شریعت بلی همه را حسب بکنه با مسته به روایات در میاد که اصولا شراعی الهی خط واحدی هم این طور نیست ولی زده جبنی حضرت زلال تحویل سردنه یک مطلبی رو که از انبیاء سابقین بوده نهارو کردن برای اینکه در این شریعت تحصیل تأثیل گذاری رو حدیث شماره 15 یک بوی بدی در زمان رسول الله آمد اینو خوندین من از کلم لباللوه و از کتب اهل سنه رویت در مسادر ما نیامده حدیث شماله 16 اما اون هم تجسسم غیبت که تشبیح به یک بوی یعنی بوی بدی و بوی, بوی گمدی مثلا گمدادی بود. بود حدیث شماره 16 از تنبیه و ثواته نرکدیم تو کتب اهل سنت آمده نه بودیم چون رسول الله شخص لبنان مائز به اسطلاح چیز کردن رجم کردن حالا اون قصه ارسن چی بوده چی بوده مائز کی بوده سنتش چی بوده میگن حتی مدارم اصلا کنبود عربی داشته چی بوده لا آخری بعد بعضی ها قیبتش بعض شد و قیبتش شد به حد الهی اون وقت بعضی ها قیبتش کردن و من و النبی و... چیزی نگفتن بعضی اونی که زن قیبت کرد بعد پیغمه به یک جیفهی میتهی مرداری مرورشون افتاد بود اون افراد گفتن بیاین شما از این بخوریم اون یا رسول از این میتو؟ فرمه که اون کاری که شما نستده به ما از از این بدتره و معصب کما من اخی کما انتنا من هازهی اینجا از تنبیه و خواتر و راه شیخ عبالکتوفی تفسیریه عنه ابن عمم عبی غریره به افت سطح من هازه راسته و متونش هم پیش اهل سنت مختلفه این به سمت تو ما نیامده تو مسادر ما خیلی به بسند واضحی نیامده بعد داره که حضرت می که اما علمتما علمت انهو تشدیل اشتباه شار کرده یست بهو فی انهار الجنه الان این شخصی رو که رجوع کردیم در انهار بهش داره شنا میکنه کنه یست را خوندیم دیروز در, در کتب اهل سنا داره یمقن سو فی انهار الجنه فرو می توی نه بهشت، بهش چرا این شخص رو مثلا خیبت کردیم از کردیم حدیث 16 به شونزر به دو سنده برده هیچ کدومش از طریق احلیت نرسیده حدیث شماره 17 قطف راوندی فیلوب بلوبا انن نبی انهو نظرف نار لیلت الاسراء یک این مقدار منتجسوم اما در آلم برزخ در آدم قیامت در شب معراک فی اضاقومونی اکولون از جیه این هم منتجسوم شد که من حرمت هم از پیش درمی این هم الان در مسادر ما نیست حدیث شماری هیجدن عبالقاسم الکوفی فی کتاب الاخلاق این کتاب اخلاق احتمال دارم یا نگاه بکنم احتمالاً چاپ شده باشه سابقه چاپ نشده بود یه نصفه ای مرحوم حاجی نوری از این کتاب داشتن خودشان میگن نصفه ناقصه ایشون کتابی داره قاسم الکوفی به نام آداب و مکارم الاخلاق که اسم کتاب ثابت چون نجاشی اسم کتاب آورده و مرحوم صاحب ریاض هم گفته یک ای من دیدم از این کتاب در قطیب خود حاجی نوری نسخه از این کتاب داشته اما بیش از این ما شواهدی از این کتاب نداریم اصل کتاب ثابت خود قاسم کوفی رو هم شیخ هم نجاشی مقصد نجاشی خیلی بکدور حمله کرده که اصلا میگفته من سیدن سیدن نبوده کسی که جزء همون شبار کلات هم بوده هم شیخ زارندیش میگه عل خدات یعظم له منزله تن عظیمه عظيمه جزء اون خط انحرافی هم بوده علایم حاجی نوری اثر داره از این کتاب نه میکنم می کتاب لطیفی از وازش قشنگه و اول ربات میاره بعد مسائل دیگه متفرقات اشعاری اینها بهش اضافه میکنه ایشون تعریف میکنه کتاب رو من چون نایدانم میشوام به هر حال از این کتاب عبالقاسم کوفی که تضعیف شده و حتی شده که ایشون نسبت سند سیادست به خودش داده در اینجا این شماره 18 در جمعه الاخوار و این در جا مستدر و در یکی دو شماره بعد هم حالا بعد از میکنن مرموم حاجی نوری در باب قیبت ازشان نهار میکن. این هم راجع به بله اینجا داره یا قن ورقیبه از حدا سجاد ث انه ها ادام و من یاکل لُهُم الناس ادام من یاکل و... کسی که لحوم مردم رو می‌خوره الله اکبر که لحم اخیل مؤمن بود این خورش اونه کسی که مثلا گوشت مرغ خود خود گوش غالبا خورش شد دیگه آنه... خلاص به نظر خرابکاری کرده حدیث قرراتی حدیث شماره 19 حل امام ابو محمد الاسکریفی تفسیره اعلم و انقیبتكم لأخیكم مؤمن منشیعت آل محمد صال الله علیه و حاله علی این روایت ترمه تنها... من میشه به این مضمون تنها است که ازش میشه استفاده کرد که حرمت قیبت خصوص شیعه تصریح داره تو رواسه دیگه مؤمن من کمول از محروعت و اینا اینجا داره منشیعت آل محمد اعظر تحریم من المیته میته قاله الله از دارده و لایخته برز کن برزار ما ارز کریم تفسیر امام از که بیشون منصوبه اصل نه داره کتاب جعلیه بینر اول آخر سندش هم جعلیه نه را کده کتاب دیگه حالا نفس امالی امتوسی امالی توسی قبل از الله حافظ در اوائل امالی حدیث مفصلی فریز خطاب به عبی زر توضیح ارز چندین حدیث در کتاب سنی بشیه بعضا شاید در کتب اهلستانه صحیح هم باشه یا عوازدر یا... اونایی که سنده شکلی مقدوره قابل قبوله قبول مثلا دو سطفره، سه سطفره، پن سطفره خیلی طولانی نیست این ای که در امادی شیخ ترسی آمده خیلی طولانیه اینه کونزه سطفره، آوازده هست خیلی طولانیه که بطرعا این حیات مجموعی جعلیه علایه حاله مجموع احادیث جعلیه یکی که باطله. قال یا عوازار ایات برقیب پقیله شد بدون از این حدیث الان به این مار ظریعف اصلا دیگه هم داره که ریبت شید بدون زنا این ضریف که این یک نتیجه فری داره یعنی ماشالله تعالی به نتیجه فری اون که ریبت هم جزور کباائره چون این که ریبت جزو کبااعره در خیلی دقی باززهی نیست و بعضا میششه ریبر جز کباائر نیست هم شیخ، هم آرومی که بعد از شیخ آمدن اصرار دارن که روزه کبائره یکی از عدالش نمی همینه چون اشد دومن از زنا زنا روزه کبائره پس اشد میشه خب بعد از جاب روزه که حالا چرا اشده این دورت از قابل قبول نده چون بعد یا عوازر سباب المسلم فسوقون و قتاله و کفرون و اکل و لحمهی من معاصل این حدیث قول دید این حدیث مستقلی و ثاني حدیث قرار قول شارع رسول الله ماخيبه قال ذکر و که اخاف به ما یک رب اینم داریم از غیله عزیزه که فیغا ما ذکر که اخاف به ما یک بود. بعد در قول شارع رسول الله امکان فی ادا که لذی ور که قال اعلام ذکر و موافی فلا از و ادا ذکرت و به مالی سفی فقط به حسب اینم داریم اینم یکی از احادیث کریست که ان شاء الله متعرض در تفسیر لی اما کاملا واضح شد این مثلی که آورده از کتاب از زیات ارزی سه تا حدیثی که برشی وارد شده یعنی کلام ماریج به تفسیر قیمته که انشالله شاء عرض میکنه در کتاب تنبیه الخواص این مطلب در فتو بحث سنت آمده عرض کرده ان و ابی سعید جداگانه هم آورده قال قال رسول ایا ایوب کو بلدیه اشد من از زنان در مجموع بیانم باز از طریق جابر آورده در کتاب مجمل بیان قال قاله ياكم بالفيده این تمام این روایات بر می‌گرده درات اهل سنت پیش ما الان این ثابت نیست پیش ما این یکی هست مثلا وقتی شما میخواهید همین رو چون در کتاب خسال شیخ صدوق حضرت امام محمد بن مسلم متک تلک توصیه رسمی نداره ان و ابن تابوس توصیف کردن فعلا بنا قبول توصیه این دو نفره حدیث محمد محمد نیحیه اتار از مشارق اجله قومه حدیث در کتاب علم صلو عبی حالا اگر اون یکی از صلیم ابن مترکه. پدر صلو نام که سقرد قال حدیث محمد نیحیه بعد میگرد یه گرفت. قال حدیث محمد بن احمد کردم چرا یکی از آن قوم کتابی داشته خیلی پر حدیث بوده کتاب بزر قومی ها به عنوان علم روزه یک شوفی اسم کتاب دربه شبیب بود شبیب به بقالی بوده دربه داشته توش همه چی بوده هر چی پس تو که داشته همه چی از توش در بوده هر چی اسم نه بوده دربه شبید. این توش همه چی بوده. قال حدستان ابو عبدالله رازی این ابو عبدالله رازی قومی ها مخصم محروم ابن و ولی ادبه از احادیثیشون استثنا کرده ان در حسنه علی این خوبه انا اصوات محمدی از اوشن نظر یرفعه الی النبی خیلی با سر افکرم در کتاب اختصاص شیخ مفید که نصادگیضا خیلی نیست، قال رسول الله ارغی و تو اشد من زنان اونی که به طریق ما بشراجه همینا واظن در ائمه نرسید علمای ما رفعه الی رسول الله این هم ندارید قصف راوندی هم در لب و لباب این هم ثابت نیست پس اینه که مرموم استاد دمشتن این روازی که بیاقی و عشد و نزدنا کلها زعاف درسته کلی روازی از اروازی رو شکتم تا